The denial of human dignity in Iran is an outrage that deserves the condemnation of all who speak out for freedom and justice. Why do people have the right to ادعا میکردن با تروریست مخالفیم امروز با تروریست ها هم پیمان میشن در منطقه ما و در بسیار از نقاط دنیا با تروریست ها میرن میشینن مدار میذارن، پول میدن اصله میدن که برن کارهای تروریستی انجام بدن گروه منافقین را که خودشون اعتراف کردن به ترور هزاران نفر در کشور زیر چتر حمایت قرار میدن به قول خودشون از لیست سیاه خودشون خارج میکنند خاملا واضحه که وقتی دولتی مثل آمریکا یا مثل بعضی از دولت های اروپایی از گروهک های تروریستی که دستشون به خون آهاد ملت آغشته است حمایت میکنن با اونها معامله پناهنده سیاسی میکنن اینها نمیتوانند در ادعای مبارزه با تروریست صادق باشن. مروج تروریسم صادق باشند اینها مروج تروریسم اینها تروریسم و تروریست ها رو زیر دامان خودشون برای مقاصدشون تربیت میکنن می چیه که ندانه که در ایران غول ها حتی اون هایی که سبغه چپ داشتن بسیاریشون از منابع مالی دولت های غربی و آمریکا تقویه می میشدن و هنوز هم می شدن. ما اینا اسم حقوق بشر میارن ما مدعی هستیم ما از اونا سوال می کنیم ما گریبان و آنها رو می گیریم در پیشگاه دادگاه افکار و دنیا اونو جوابی ندارن, جوابی ندارن. اومیلن واضحه که وقتی دولتی مثل آمریکا یا مثل بعضی از دولت‌های اروپایی از گروه‌های تروریستی که دستشون به خون آهاد ملت آغشته است حمایت می‌کنند با آنها معامله پناهنده سیاسی می‌کنن اینها نمی‌توانند در ادعای مبارزه با تروریسم صادق باشند اینها مروج تروریست. تروریست. اینها تروریسم و تروریست ها رو زیر دامان خودشون برای مقاصدشون تربیت می کنند چیه که ندانه که در ایران گروهک ها حتی اونهایی که سبغه چپ داشتن بسیاریشون از منابع مالی دولت های غربی و آمریکا تقبیه می و هنوز هم میشن. اینا هم حقوق بشر میاره ما مدعی هستیم ما از اونا سوال می ما گریبان آنها رو می گیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا اونو جوابی ندارن جوابی ندارن